نوامینه. عکسی که از من اینجا هست خیلی ری من اینجا, اینجا نیستم. من احمد علی فرهودی هستم، دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری علم و تکنولوژی در دانشگاه تهران و مدیر عامل شرکت سروسر. من معمولاً سعی می‌کنم و الان هم به طور خاص قصد دارم که مقداری حرفای تلخ و ناامید کننده و بدبینانه بزنم شاید یه ذره باسه که فضای خوشبینی تا الان یکم بالانس شد شاید یه ذره به خاطر اینکه به آقای دکتر چینی گفتم اگه که میدونستم بهشون میخواهند در مورد خوشبینی حرف بزنم من شاید اصلا عنوان سخنانی رو میذاشتم در ستایش بدبینی و امیدواری گلنم ام. باید این کار میکنیم؟ اوکی ام. من در چهار بخش میخوام صحبت کنم، عنوان صحبتم گذار به فناوری های امیقه فناوری عمیق در برابر فناوری کم امخ که بعدان در موضوع شرف میزنم که فرقشیه ام اول ام یه مقدمه میگم که اصلا قصه ای این گذار تکنولوژی الان در دنیا به چه سمتی داره میره بعد صحبت خواهم کرد در مورد اینکه دنیا ما رو در حوزه تکنولوژی و هایتک چطور میبینه بعد کمی حرف می در مورد اینکه مشکلات ما کجاست و در نهایت هم در مورد اینکه چه باید بکنیم. در درباره تاریخچه سرمایه گذاری در صلاحی هایتک در دو دهه اخیر، شاید بگم سه دهه اخیر خیلی از شما شنیدید. در دهه 90 و اوائل سالهای 2000 دو خب سرمایه گذاری مفصلی انجام شد در حوزه کسب و کارهای اینترنتی، شروع شاید از سیلیکون ولی بود از همون اواسط عو... دهه نبد یا همون اواسط دههی نبد و بعد ادامه پیدا کرد به همه جاهای دنیا گسترش پیدا کرد تا اینکه در اوائل سالهای 2000 یا 2001 دو هزار به و بازار سرمانه گذاری در کسب کاروی دیگی دارد اونیا ترکید افراد زیادی بدبخش شدن رفتن به زندان به خاطر به که داشتن انتظارات خیلی بالایی که از این سرمایه‌گذاری‌های اینترنتی وجود داشت محقق نشد و اتفاقی افتاد به اسم دات کام کراش سقوط دات کام یا انفجار شدن دات کام. بعد از اون اتفاقی که افتادیم بود که خیلی از همون سرمایه‌گذاران که زنده مونده بودند و تونسته بودن دربرن لفتن سراغ در بران رفتن سراغ فناوری‌های سرمایه‌گذاری در حوزه فناورهایی که عمر بیشتری دارن به معنی اینکه لزومن فقط از تکنولوژی‌های که به صورت تجاری در دسترس هستند استفاده نمی‌کنن به جای اون میرن سراغ جاهایی که تکنولوژی از سرمایه‌گذاری خیلی بیشترن می‌خواد، آراندی خیلی بیشترن می‌خواد، پتنت وجود داره یعنی تکنولوژی میتواند انحصار بشود و پول ازش در بیاد، قابل کپی برداری نباشه و ماهیت خیلی مهم دیگه‌اش هم این است که بین رشته‌ای است، مثال‌هایی رو دوستان در همین می زدن فناوری های بینرشدهی به شدت مورد توجه قرار گرفت و خب این فناوری ها همون تو که گفتم خیلی مفصل روش کار شد. این نموداری که می‌بینید اسمش از نمودار تب تکنولوژی یا تکنولوژی هاییب که گارتنر همسر رو می‌کنه. میکنه. این نمودار اولاً یه مفهومی رو به اسم تب تکنولوژی خیلی به ما نشون میده. اینکه وقتی یه تکنولوژی میاد سوران همه تکنولوژی ها وقتی که میان به ما میگن که این قرار رو روش زندگی آدم ها رو عوض بکنه دیگه همه خوشبخت میشیم و خوشحال میشیم و دیگه از فردا قرار نیست اتفاق بیفتد و فلان اینا بعد از یه مدت این در حقیقت سطح انتظاراتی که از اون تکنولوژی وجود داره مرتب میره بالا بعد از یه مدت از یه قله رد میشه و میخور زمین در خیلی از موارد خیلی از اون تکنولوژی تو این فاصله یا میمیرن یا زیر اون انتظاراتی که از اون وجود داره دفن میشن بعد از اینکه خوردن پایین می بینید که دوباره با یه شیبه منطقی تری حالا شروع میکنن رشد کردن و میان و در زندگی ما وارد میشن و واقعا تغییرات جدید در زندگی ما ایجاد میکنن. تو اون بهمودار پ سرعمل نگاه بکنید حالا من چون اینجا وسی فر رو سخت باشه. تکنولوژی های گارت رو توی سرش ب ببینید. خیلی از این تکنولوژی هایی که الان داریم نودش حرف میزیم مثل اینترنت ااشاء در مرحله رسیدن بقول است تکنولوژی مثل چاپ چهار بودی در پایین تازه شروع حرکت های شخصی مجازی مثل سیری و این چیزی که روی این گوشه اندروید هست اون وسطان اون بالای قله رو به نزول شما خودروهای خودکار بدون راننده رو دارید می‌بینید و حالا هایی که وارد بحث فنیش نمی‌خوام بشم چیزایی که به پایین رسیدن و کم کم دارن میرم بالا هم نمونه خیلی خوبش بحث واقعیت مجازی و ویچوال ریالیتی و آگمنتد ریالیتی که سالهای سالی که در موردش شنیدی زدیم الان شما کم کم تو پارک‌های تهران و سینماهای تهران هم دیگه این که کم کم حالا مردم دارن پول میدن برای اینکه واقعا بیان درگیر واقعیت مجازی بشن فعلا حالا باش بازی کنن تا بعدا کاربرد دیگه اش هم به جامعه وارد بشه نکته خیلی مهم همه این تکنولوژی عمیق فناوریه شما اینجا دیگه تو این نموداره الان دیگه یه مسنجر نمیبینید مثل یو که سالها در امریکا در چند همین 4 ساله سال پیش تو در امریکا میلیون ها دلار دها میلیون دلار سرمایه جذب کرد برای اینکه آدما بتونن به همدیگهن یو همین. این تکنولوژی ها ده خیلی در حقیقت ماهیت بین رشته ایشون همونطور که از کم خدمت شما قویست و دیگه افراد یک تخصص اصولاً نیستن که در مورد بی فناوری صحبت میکنند صاحب گذاری خیلی باحالی زیادی در حقیقت لازمه و این باعث میشه که خیلی باحال بشه این فضای تکنولوژی الان تو کشور ما همه دارن در مورد بی تکنولوژی حرف میزنه تو همین صحبت های امروز ما وزیر دولت چینیش صحبت کردن در این مورد این مقاله‌ای که پارسال تو تایم منتشر شد چرا هیچکسی دیگه در مورد بی تکنولوژی حرف نمیزنه رغم این نانوتکنولوژی مرتب داره دست های جدیدتر و بهتری برای بشریت عرضه میکنه. الان دیگه فاند سرمایه گذاری یه ویسی که بگه من تخصوص کارنانووتکنولوژی دارم انجام میدم. نمیگم وجود نداره ولی حالشون خوب نیست سرمایه گذاریششون شکست خورده. به خاطر اینکه ناگهان یه اصطلاح تغییر پارادایم ایجاد شد. یه شیفت پارادایم ایجاد شدی و همه دنیا فهمیدن که ننووتکنولوژی دیگه یه فناوری به ماه و ناانوتکنولوژی نیست، نانوتکنولوژی یه چیزیست که رو، تغییر میکنه و باعث میشه که اونا رشد میکنن. درنچه شما میرید تکنولوژی در حوزه پوشاک داریم، در حوزه الکترونیک داریم، در حوزه سلامت داریم. اما نا... سرمایه گذاری که تخصصی رو حوزه نانو کار میکردن، الان سرمایهشون بسیار بسیار کم ارزشتر از چیزیه که مثلا 5 سال پیشو 10 سال پیش بود. پس این باز یکی دیگه, دیگه از خواست این فرابراریهای عمیقه که در مورد صحبت میکنیم. دنیا ما رو چطور میبینه؟ بعد از در این یکی دو سال اخیر به طور خاص می بینید که خیلی صحبت می در مورد های تک در ایران خیلی از خارجی اومدهدن تو ایران صحبت کردن گفتن که آ اینجا هاییتیک داره روخ میده و خلاصه ایران اصلا سرزمین کش نشده است و خیلی اتفاقات خوبی داره توش میفته دو تا چیز وجود داره دو تا من اسکننشات دقیقه خبرار رو گرفتم که شماتون ببینید.طم غاب وجود داره در اینا یکی این که ما فقط یه سری کسب و کار اینترنتی هستیم نه کسب و کار دیجیتال کسب کار اینترنتی هستیم یعنی سایت مثلا تحویل غذای این تحویل مثلا اپلیکیشنیم یا چیز شبیه این یه چیز دیگه هم که همه دارن می‌بینن که و مرتب هم میگن اینه که ایرانی کپی کارن یعنی از فضای تحریم‌ها استفاده کردن تونستن آمازون و گوگل پلی خودشونو اینجوری استفاده بکنن اینی که من دارم میگم خوبه ها من نمیگم که این اتفاقاتی که در فضای کشور من خودم از فضای دیجیتال و الان درآمد من اصولاً از فضای دیجیتال است در, در مرحله مرحله‌ای از مسیر رشد و توسعه‌ی هایتک هستیم که مرحله‌ی درستی هم هست من فقط دارم تصویری که خارجی ها از ایران دارن رو به شما نشون بدم دو تا نمونهش اینجا هست که مقاله گاردین یکی مقاله واشنگتن پست نمونه دیگه اش جورنال دوباره پارسال مقاله زاده بود که اصلا این خبر اصلا نگاه بکنید می‌بینید دقیقاً ورژن های ایرانی آمازون و گوگل پلی و چیزهای این در شرایط تحریم خیلی وقتا این به بحث های سیاسی هم متصل میشه میان مثلا این آقایونو نیویورکر میگن که اصلا بحث های تک در ایران رو متصل میکنم به نمیدونم بحران در چه میدونم وضعیت سیاسی کشور و این حرفای بیสารاتایی که اصلا نمیفهمم از کجا تو همه این گزارش‌ها هم تقریباً شما ظاهر خیلی قشنگی رو می‌بینید در مورد توصیف ایران وقتی صحیح می‌کنید بین خطوط رو بخونید یک نگاه بالا به پایین استعماری عجیب و غریب رو همونجا می‌توتید ببینید یعنی می‌بینید که ایران در زمینه های تک چیزی که این آقایون دارن میگن اینه که ایران در زمینه های تک یه سری آدم هستن که استفاده‌هایی از اینترنت هم دارن میکنن و یه کپی‌های ازو دست ما کردن و اشکال نداره خیلی خوبه بنذریم از این مثلا حالا با دوست باشی. این تصویر تصویر خوبی نیست. من به عنوان یک نفر ایرانی از این عکسی که دارن از من در جهان نشون میدن خوشحال نیستم. هرچند که خیلی از حرفا هم ممکن است درست باشه. خیلی از کارهایی که ما داریم می‌کنیم واقعاً همین کپی از بیزنس مدل‌های خارجی کار خیلی خوبی هم هست، دممونم گرم ولی کافی نیست و از اون درستم نیست. اینکه ما خیلی کارهای هم داریم می‌کنیم که نمودی خارجی پیدا نمی‌کنند. در زمینه‌های مثل بیوت ساینس، پروژه تکنولوژی نانو تکنولوژی، الکترونیک، مخابرات و به های مشابه. مشکل ما کجاست؟ مقاله دنیای اقتصاد در مورد صادرات سینوسی هایتک در ایران. ببینید ما حضور هایتک در های عمیق در جهان نداریم. تقریباً هیچی نداریم. حجم صادرات ما خیلی کمه. یعنی در اشل صادرات هایتک ما در حدود 200 میلیون دلار در سال ما انتظار داریم یه شرکت داریم مثلا چینی یا هندی 5-6 نفره بیشتر از این صادرات داشته باش رسول یعنی خنددار حجم حضور ما در جهان از نظر هایتک. درصدش نسبت به کل صادرات ما خیلی کمه تو این نمودار شما میتونید ببینید ما در پیکمون به یک ممیز مثلا 54 درصد صادرات صنعتیمون هایتک بوده الان زیر یک درصد صادرات های تکیمون رسیدیم. و حالا جالبی که بدونید از کل صادرات تایتی که ما یه چیزی حوش 80% درصدش هم مال مواد شیمیایی و داروییه یعنی در زمینه های دیگری که در موردش حرف تقریبا تقریبایه حضور معنیداری در سطح جهان نداریم مشکلات ما از کجا داره ناشی میشه؟ من خیلی سریع سه، چهار تا مورد رو میخوام بگم برای اینکه خوبی که بتونیم به تصویر داشته باشیم منظور من الان هدف من تحلیل سیاستی نیست منظور من بیان روس و رو. یکی که خب بعددی هیچ بحث، توب و سرمایه گذاری اگه یه نفر پول داره احتمالاً ترجی میده بیاد بش که صبر زیادی داشته باشه 10 سال۵ سال بخواد سرمایه گذاری میکنه در یک حوزه ای با فناوری امیر میاد و پولش می رو میذاره تو بورس یا اگه عضاعای مسکن به تر شد تو مسکن و خیلی بی ضربیی وجود ندارد بحث دیگه ارتباطات به بین الملی ماست واقعیت اینه که داشت شکل می گرفته اول ده ۸اد و بعد با سرخررد زمین و الان دوباره در فضای پس و بررجان خوبه شکل میده هرچی بگیم واقعا در مورد اتفاقاتی که افتاد در این زنگ کم گفتیم چالش دیگری که داریم چالش دولت سالاری و دانشگاه سالاریه ببینید هیچ جای دنیا به اندازه ایران دانشگاه ها رو در توسعه هاییتیک جدی نمیگیره یعنی ما فکر میکنیم که خیلی مهم است که دانشگاه ها پیشرو باشد نه خیر در هیچ جای دنیا شاابتید نگاه بکنید نمیبینید که کسی انتظار از دانشگاه داشته باشد که برره محصول تولید کنه و بفروشه انتظار از دانشگاه داشته باشه که موتور توسعه صنعتی و هایتک کشور باشه. تو بحث دولت سالاری هم حرف زیاده. یک چالش خیلی مهم تو دولت سالاری اینه که دولت داره سیگنال غلط به بازار کار میده. ببینید ما الان در حدود 15 16 هزار نفر فارغ تحصیل تحصیلات تکمیلی تکنولوژی داریم. فکر نمی‌کنم 500 نفر مهندس مخزن نفت داشته باشین که پول اونسه روزمره زندگی ما دارن اونجا دارن. به خاطر اینکه اسمش قشنگه و دولت خیلی دوست داره اینو خب درش حرف بزنه سیگنال غلط به بازار کار داده می شود دانشگاه ها هم کپشتش رو تأییل میکنن و یهو یه شما میبینید بینید که 15 هزار تا فارغ و تحصیل بیکار ننووتکنولوژی داریم که هیچ کاری هم واسه تجاری سازی کار محصولات اینا انجام نمی شود. اما چالش اصلی خواستم کل حرفها رو که به این برسم این ازیت اون حرف است که بعد میخوام تبدیلش کنم به یه حالا فرصتی. این وضعیت بازار داخل کشور ما در حوزه فناوری های مرق یه بیابون باشن روان بدون هیچ بیسی. یه لیوان آبم هست که مجموعه تلاش سرمایه های دولتیه که میخواد به او داده و تلاش خود افرادی که تو این حوزه واقعا دارن زحمت میکشن. تیمای ما تو این حوزه داریم خیلی خوب و قوی دارن تو عضاعای نانو و بیادهییت کار میکنن ولی مثال دقیقاً همینه. این لیوان آبه که میرییم توی این بیابون. اتفاق بعدی که داره میفته چیه ما یه زمانی اعتقاد داشتیم به یه چیزای به اسم خودکفایی و جایگزینی واردات خوشبختانه الان دیگه دولت ما مسئولین دولتی ما دیگه هیچ کدوم به این چیزا اعتقاد ندارم به یه چیزی مثل خودکفایی خوشبختانه غیر از صنایه استراتژیک که کار حالا کاری بهش ندارم در حوزه های تجاری اعتقاد ندارم پدیده عجیبی که ما داریم می‌بینیم اینه که شرکت‌های دانش ما خودشون دارن میرن سمت خودکفایی یه بخشش به خاطر همین ایزوله بودن از جهان ها ولی شما بینید شرکتی در ایران داره کار میکنه خیلی تیم خوب و قوی هم دارن اصرار زیادی وجود داره به اینکه برن محصول نهایی رو تولید کنن و داخل ایران بفروشن به عنوان جایگزینی واردات گزاره استانداردی که همه ای ما سالها شنیدیم و خوشبختانه الان کمتر میشن میمونه که من یه مثلا جوان 16 ساله‌ای هستم تو زیرزمین خونهم رفتم یه مثلا محصولی رو تولید کردم با هزار دلار در صورتی که معادل خارجیش 500000 دلار بعد که می‌بینیم خوب اون تجاری نمی‌شواد و خریداری نمی‌شود شروع می‌کنیم گله و شکایت کردن که به حضور شما نسبت از من حمایت نشود و من خیلی خوب بودم و نتونستم تجاری بکنم و اینا به همین خاطر که می‌بینید حساسیت روی تجاری سازی اینقدر در عالی‌ترین سطوح کشور وجود دارد بدرستی اشتباهی که شرکت‌های دانش بنیان مدین حضوران می‌کنند شاید هم گزینه‌ی دیگری نداشته میگه تمرکز رو بازار داخل. من هرجوری که جلسه ای هست صحبتی هست. همیشه از دوستان خارج می‌کنن که این دندون فروش داخل کشور و جایگزینی واردات رو بکنید بندازید دور اگه در حوزه فناوری‌های ارتباطی کار میکنیم باید بریم جامون رو در زنجیره ارزش جهانی پیدا بکنیم ما بهتر است در این حوزه‌ها یه دونه پیچ تولید کنیم از یه ماشین که یه نفر آمریکایی داره می‌خوشدش تا اینکه تلاش کنیم یه ماشین رو کامل رو داخل کشور خودمون تولید کنیم و داخل کشور بفروشیم این اتفاق برغم این که دولت سیاست‌های بسیار خوبی رو در پیش گرفته. برغم این که معاونت امور ریاست جمهوری واقعاً الان خوب داره بر اساس best های جهان و بر اساس تجربیات جهان داره کار می‌کنه، این اتفاق نمی‌شود که در 5 سال 10 سال آینده بیفتد که در ایران اکوسیستم قوی برای فناوری‌های عمیق شکل بگیرد. به خاطر اینکه اینجا زمان می‌خواد. مثل ترشیه. ترشی باید زمان می‌خواد که پخته بشه. تو همین منطقه ما کشورهایی هستند که سابقه حضور VC ها، Venture Capital ها درشون به 30 سال قبل برمی‌گرده. ما توزیعی که 2 سال درمورد ونتچر کپیتال صحبت می‌کنیم داخل کشور انتظار اشتباهی است که ما بتوانیم در کوتاه مدت اون بیابان رو تبدیل به یک مرتبه بکنیم پس این کاری است که همه در شرکت های این حوزه به نظر من تا جایی که می باید تمرکزشون از بورس داخل بردارن برن سراغ بازار خارجی به با عنوان یه پیچ کار بکنان نه یه محصول نهایی دولت ما باید تلاش بکنه که اون عکسی که تصویری که از ایرانیا گفتم به غلط وجود داره رو اصلاح بکنه و این ترکیبیست از دیپلماسی فناوری و دیپلماسی عمومی ما آدم های خوبی و داخل کشور داریم که با مطبوعات جهان ارتباطات قوی دارن و میتونن به عنوان یه پتانسیل عمل بکنن برای اینکه ایران رو واقعا تصویر بهتری ازش به جهان بشناسونن کار دیگری که باید انجام بشه بحث نهادهای میانجیست که حالا خیلی واردش نمیشم چون فرصت نداریم و, و از اون کاراست که دولت میتواند بکنه برای کمک به همین صادرات و قید کردن جای خودمون در زنجیره ارزش جهانی من صحبت تمام میکنم با این اسلاح. این از این گفتم مثلا میگم بدبینم بشم و امیدوار این از این استاده خیلی امیدوار کننده است اینو چند سال پیش من تو مجله اکونومیست دیدم تبلیغی که میگه که در هالیوود چهار درصد فیلم ها رو خانوم ها میسازن تو ایران 25 درصد فیلم ها بعد بانک اچ سی داره میگه که من پتانسیل و فرصت رو یه جاهایی میبینم که البته هر کسی نمیبینه شما چطور من فکر می کنم ما خیلی پتانسیل داریم همین که بانک مثل اچ سی میره از کشور ایران برای فیلمسازی زنان مثال میارد نشان دهنده همین پتانسیل بالا. واقعا الان وقتشه که جامونو در دنیا پیدا کنیم و البته این کار خیلی سخت متشکرم